باب سوم در فضیلت قناعت حکایت خواهنده مغربی در شف بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت رسم سؤال از جهان برخواستی ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست کنج سبر اختیار لغمان است، هر را صبر نیست، حکمت نیست.